اشکو تو پاک میکنه شبا که قصدوری دست رو موهات میکشه وقتی منو ندوری شون یکی مرهم حق حقت نشه دوباره از کی بهونه میگی شب و ی میستاره بر قریز اونوی پاییز کی چشم برات نشسته از جلو پات چم میکنه برگای زرد و خسته کی مونثی میمونه تا شبای یلدو با خند رو لبات بیاد شب برسه به فردا کی از تا رود بارون قصد بران می سازه از آشقی اشکاتو کاک میکنه شبو که قصد داری das rumohat kimikashe vaghti man o nadori شونه یکی من همه حقیقت میشه دوباره اشکی بهونه میگیری شبای بی ستاره برگریزونای پاییز کی چشم را دشسته از جلوهاد جمع میکنه برگای زرد و خسته کی منتظر بیمونه حتی شبای یلدان خند رودم از بیاد شب برسه به فردان یه اشکو تو پاک میکنه